حکایت هرمز را گفتند وزیران پدر را چه خطا دیدی که بند فرمودی؟ گفت خطاای معلوم نکردم، ولی که دیدم که مهابت من در دل ایشان بیکران است و بر عهد من اعتماد کلی ندارند. ترسیدم. از بیم گزند خیش آهنگ حلاک من کنند. پس قول حکما را کار بستم که گفتند از آن کس تو ترسد به ترسی حکیم وگر با صد برایی به جنگ. از آن مار بر پای رایی زند که ترسد سرش را بکوبد به سنگ. نبینی که چون گربه آجز شود برارد به چنگال، چشم پلنگ